عزب الله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله التعبین الطاهرين الله مصلحنا الباب اول اسیار القلاجاتو با اول سیره های اقلائیه مقدمتون سلامه بحث البحث عن حجیت سیرت اقلائیت و شرحل مصطلحات و یا شرحل مصطلحات جلسه قبل شروع کردیم اینجا رو متا چون اکثرا دوستان نبودن ما یه بار دیگه این دو خط اول رو تکرار میکنم اولین بحث ما در مورد سیره های عقلایی است بحث بعدی ما در مورد سیره های متشرحه و بحث های بعدی در مورد سیره عقلایی البته این باب اول که گفت سیره عقلایی جمع دیگه سیره های عقلایی چه داریم در موردش بحث خواهیم کرد از کردم اینا بحث های مفیدی و شاید فرق این کتاب الفائق با کتاب رسائل در باشه که شما اینجا هرچی میخونید خیلی هاش تو فقه به دردتون خواهد خورد که عرض کردم درسی قبل برخلاف رسائل که خیلی باید توش بخونید, بخونید تا یه چیزهایی تو فقه به درتون بخوره. این نظر منه ها البته بعضی ها معافل نیستم باید. اما الفایخ خب خیلی ها. خیلی جهاش بیشتر به درد میخورد خب سیرای اغلایی اولا چرا ما در مورد سیره های اقلایی بیاییم اونجایی مفصل بحث کنیم مستقل به صورت متمایز اینا جدادانه بحث کنیم جلسه قبل عرض کردیم که شما در کتاب اصول مزفر این بحث را دیدین سیری اقلایی را دیدین ولی کلن در کتاب های اصولی رایچ سیری اقلایی را بهش خوب نپرداختن ها که شاید خیلی نبود اصلا بعد هم اونجوری که حقش ادا بشه ادا عداب نشده با چهار تا نکته اینجا برای شما ثابت خواهیم کرد که باید اینجوری مفصل، مجزا، مستقل و به صورت این چه بهش اهمیت میدیم باید بحثش اینجا باشه اشاره شد جلسه قبل اشاراتی بهش شد حالا میخونیم عبارت رو مقدمتون این مقدمه در واقع دو جزئیه. اولیشینه ضرورت طلب بحث عن حجیت سیره عقلاییه. آها شما در فقه در فقه به سیره عقلاییه نیاز دارید. از سیره عقلاییه میخواید بعضی احکام رو اثبات کنید. اتفاقا همین هم اشاره شده. یعنی چیزی که میخواستیم بگیم خب برتون که سیره عقلاییه مهمه همینجا اشاره شده. تو خود اصول هم سیری اغلایی لازمه این دوتا جهت حداقل تو زهنتون باشه اگر کسی پرسید ضرورت بحث از سیری اغلایی همین دوتا بگید هم تو فقه یه سری احکام رو با این اثبات میکنیم هم تو خود اصول یه سری قواعد اصولی رو با این اثبات میکنیم حالا این دوتا جهت اول رو ببینید. و شرحل مصطلحات این رو شرحل من دوست دارم بخونم علتش اینه که عطفه بر خود ضرورت بحث میخوایم داشته باشیم این رو حالا میتونید باز خودتون روش فکر کنید یعنی مقدمه دو جزئی، یک ضرورت بحث دو وقتی ضرورت بحث رو تمام کردیم بعد شرح مصطلحات این سیره اقلایی که در صفحه بعد شروع میشه پس اونجا با یه مدادی چیزی یه بذارید رو شرحو استعدادش هم تو باشه هناله البهسه انحصیت سیرت القلایت داوران کبیران دوریانی نقش. فی مباحثه علم اصول در مباحث علم اصول نقش بزرگی داره. قبل از اینکه بخونیم، میتونید این رو روشف کنید، نظرتون رو بگیت تو اصول اصول کجا از سیر القلای استفاده میکنیم؟ یه ده ثانیه فهی درش روش سیری اغلایی تو اصول کجا به درد میخوره این غیر از اون بحث سیری است که مزفر اوورد باب سیری اغلا نه تو جاهای دیگه اصول کجا سیری اغلا داشتیم کجا خب بگو چیزی؟ چجوری سیر مثلا عدل حسن از ظلم قبی است سیری او چه نقشی اون داشت برو برو برو بر تو تو یا جداست دوباره بدون. خب این که خود بحث سیر اغلاست از کندم تو نواحظ اصول کجا به دردتون کنید بگم بگم میگید ها اون خیلی روشناله شما اجید خبر واحد رو با چی اثبات میکنید تو اصول با سیر اغلا بیان خبر واحد چون سیر اغلاست که به خبر واحد عمل میکنن ظواهر رو با چی اثبات میکنید با سیر اغلا پس سیر اغلا در اصول خیلی لازمه به طوری که اگر سیر اقلا نباشد حداقل دو دوتا عنصر از انصار اصولی رو از دست میدیم زواهر و خبر واحد خبر واحد و زواهر رو تو اصول از دست دادیم تقریبا دین از دست میده چیزی نمونه که و حدیث ظاهرشون از بین میده خبر واحد از بین میده چیزی نمونه که تا فرق این تو همه مصطلحات اتفاید چون در دقیقه همین سوالات شما رو داشتن تو مصطلحات اینا رو وارد میشین این شرول مصطلحات که گفتیم تو مقدمه هست یکیش همینه که اون ابهامات ذهنی شما برطرف بشه که بشن روش منقه بشه موضوع حل بحث ما چیه پس این رو ببینید انال البحث انحجیت سیرت الاغلاییت دورن کبیرن فی مباحث خود علم اصول از این جهت خیلی مهمی همین یه دونه کافیه باید سیده و غلیه رو خیلی بس کنیم روش وزالکی هم من توضیح میده منجهت انها این جهت هم فکر کنم جهت درسته لغت اینو چه کسی کار کرده به نصال درست میشه جهت درست میشه حالا باز نگاه باید. من منجهت انها مبدعون تصدیقیون لجملت من مباحث هازل علم خب مبدع تصدیقی بای بعضی وقتا خب خدا باشم ماشی کمیش بعضی وقت نه دیگه, دیگه مسئولیت از ما سر بشند بعضی وقتا توی علمی ما میخواییم اون علم را بحث کنیم مثلا علم طب میخوایم سلامتی انسان رو بحث کنیم که انسان سرماخورد چی کار کنه سرطان گرفت چکار کنه تا درمان بشه این بحث های علم تب خودش یه سری قضایا و مقدماتی لازم داره چون اون دیگه تب نیست اون دیگه علم تب نیست ولی علم تب من بخوام مباحثش رو مطرح کنم اونا باید حل شده باشه قبلا. اونا باید قبلن حل شده باشه مثلا شما در مورد همین علم تب اگه بخوایم یک نکته بگیم مثلا این که انسان تبایی دارد خب باشه. این چه تپ اگر فرض کنیم این تپ، حالا ممکن نفر میگه نه، خدا همینم تپه. اگر اینو فرض کنیم تب نیست، میگه خب انسان یه تبایی دارد این اینو قبل از اینکه وارد این تپ بشه، اینا رو بدون، میگم جرم و سرد و, و این چیزها که بخاطر خیلی وارد نیستن، وارد اینا نشه. البته دیگه تقریبا اکثر ها و مردم وارد شدن. هر میشینی طرف بری میشین. طبیب سنتیه. تا میگه جام درد ها من فلان چیز رو با فلان چیز تاتی کن رو درست کن بکن هر میشه تبایه انسان رو چار تا مثلا یا هر چند تاست اونها رو بدون وقتی این رو دانستی حالا برای علم تب رو تازه شروع کن و بحث کن اون مقدمات قبل از یک علم که تأثیر داره چون کسی که سرما خورده مثلا تبش جرمه اون درمانش با کسی که سرما خورده و تبش سرده خب فر بک لذا اون قضیه ای می شود که باید قبل از علمته حلش کنی تستیقش کنی بعد تو علمته بحث کنید. اینا میگن مبادی تصدیقی اگر اصطلاح مبادی تستیقی برای تو حال حل نشده بود هم حلش کنید و همین راحت چیز خاصی نیست. مثلا شخصی که میخواد ادیب بشه نحوی بشه یه مبادی تستیقیه داره. مبادی تصدیقی همین که مثلا لفظ چیچی چی هست دارم لفظ چیه؟ کلمه چیه؟ اینا, اینا مبادی تصدیقی هست معمولا تو مقدمات هر علمی هم میارن تو کتاب ها اون اولش میارن اون که مبادی تصدیقی که مهمه حالا همین رو تو علم اصول بیارید مطرح من در علم اصول باید بحث کنم که آیا خبر واحد حجت هست یا نه که اگر خبر واحد حجت بود؟ من این رو تو فقه به کار ببرم علم اصول قواعدی رو به شما میده در موردش بحث میکنه چه تو فقه باهاش بتونید استنباط کنید دیگه خب یکی از اون قواعده که آیا ظواهر کلام من جمله کلام اشاره اجت هست یا نه قابل استناد هست یا نه خب این رو علم اصول بحث میکنه ولی میاد بگه زواهر شارع مثل هر ظاهر دیگری حجت هست از کجا این رو میگه؟ میگه چون اقلا به زواهر همدیگه اعتماد میکنن بعد میان خیلی خوب اقلا که اعتماد میکنن خود اون رو باید ما قبل از اصول بس میکردیم که وقتی اقلا همچه سیرهی دارن آیا این سیره دلیل بر این میشه که ما این رو قبول کنیم ببینید پس ما یه علم فقه داریم قواعدش تو علم اصول بحث میشه تو علم اصول بعضی قواعد رو چه میخوایم بحث کنیم میبینیم به یه مقدماتی نیاز داره چه سیره اقلا یکی از مقدمات همین اصول میشه لذا میشه یکی از مبادی تصدیقی علم اصول تا اون هر نشه اصول ما لنگه این نکته اول ببینید و زالک هم اینجه هتنها آن تستیقی تصدیقی اون بنویسید مبدع تصدیقی عبارت هست از مبادی تصدیقی عبارت هست از قضایا و مقدماتی که قبل از بحث در علم تصدیق آنها لازم است، تصدیق به اونها نیاز هست تا مسائل علم حل بشه اونو حلش نکنیم مسائل خود علم تصدیق نمیشه لجملت من مباحث حاضره مربطه معلومه دیگه بعضی از مباحث محصول نیاز به سیره اقلا داره از حاضره سیرتو مثلا همون بحث حسن و پایین ها که دوستان مثال زدن به نظر من به سیره هیچ رتی نداشته باشه لاتشینه؟ تشینه اگر هیچ کش به بنام نگاه کنید. اگر هیچ آقلی خلق نشده هنوز ولی عقل هست این نه این عقل میشه عقل با بنای اقلا و سیر اقلا فرم میکنه اگر عقل هست ولی هیچ آقلی هنوز نیست باز عدل هست ما ظلم قبیه پس به سیره وقتی نداره اما سیر اقلا حالا تو اصطلاح کار میکنیم بازوش سیر اقلا اونیه که یه دو باید باشن بنابرای کاری در خارج داشته باشن این میشه سیر اقلا لذا همه های اصولی بسیره غلا را تطبیق نداره مثلا اصولا از حازه سیرت خب این از علت است برای این مبدا تصدیقی بودن همین که اثبات بعضی از های اصولی نیاز به این داره رو بخاط ببینید از حازه سیرت هو ام دتو ما لبهی به علی اعتبار جملت المن مسائل باب الحجج امارات بعضی از حجت ها و بعضی از امالات با همین سیره اغلاهیه اثبات می شود مثال که از زواهر برگردید به اصول های متاخرین نگاه کنید می بینید که با سیره اغلاه اثبات شد و اخبار سقات ممکنه شما بگید که خبر سقه حجیتش رو من از آیه نبع به دست میارم آرم می ولی متأخرین زومشون بیشتر رو همین سیره است. آهی ممکن ممکنه اشکال داشته باشه تو استطلال بهش و همه اهم و امارتین فلفقه در فقه گفتیم زواهر و اخبار سقه چیگه نباشه تقریبا باید دنبال شغل دیگه بگردیم ما اگر خبر واحد و زواهر جد نباشه باید آهی شمسیزا بگه اصناپی هیچ موتوری چیزی پیدا کنیم کار کنیم چون دیگه دین کلن تحتیم میشه اهم و امارت این فرف وحیلتی یعتمد و علیه الاصولی و فی تنقیه العدید من قواعد جمع بین العدلت المتعارضت بردان این وحیلتی از گریش بریمیست مثال سه مثال اولش زواهر مثال دوم خبر سقه مثال سومش قواعد جمع بین عدله متعارضت ببینید تو اصول الان براتون یه مثال اصول از قواد اصولی میزنیم که حلش با سیده باشد میگیم که اگر یک آم میسادر شد به شما گفتیم که آقا همه طلب این کلاس شب خونه ی آقای شمسی زاده مثلا مهون شاملشون هست صفصیل بعد این همه یعنی همه دیگه ده دقیقه بعد این آقا خودش می که غیر از مثلا آقای کوسری سرش شلوغ مثلا رخ خب این که میگیم آقای کوسری نیاد با اون که همه بیان متعالید دیگه ولی تعارضش بدویه تعارض حل است چی حلش نش چی حلش کرد کرده حل میشه چی حلش کرد اقلا هستند. اقلا؟ چی؟ عقل عقل ببینید بین عقل و اقلا چون من خودم هم یه زمان ما بچه بودیم بین عقل و اقلا خیلی نبهان داشتیم ولی باید حل میشه حل میشه باید از چند جلسه کاملا نه میشه این رو حلش میکنم یعنی اقلا میگن اگر یه آمی آم آمد بعدش خاصی آمد با شرایطش البته که خاص. تخصیص اکثر اینا نباشد این قابل جمع، اون عام تخصیص میخوره حمله از هر بر ظاهر میکنن خاص از هر، عام ظاهره عام رو حمله بر خاص میکنه یه میگن آقا همه غیر از یه نفر نه اینجا همه این کاره اغلاست دیگه پس ببینید تو تعارض بدوی که قابل حل هست یکی از اون مقدماتی که باید حلش می تا اون رو برای ما حل کنیم تا حالوزهای بدوی رو همین سیری اوغلا هست سیری اوغلا در حمله از هر برزاهر مثل آمخاص رو مقدم مقید رو حالا این رو که میگیم بعضش بهت بینه و بعدا فراموش میکنید دیگه حالا مثلا دو ماه دیگه برگردید اینجا رو نگاه کنید این عدید من تواهد جمع بین العدلت المتارزه شاید ب این کتاب الفائق هم کتاب جدیده دیگه شاید شرح و اینا خیلی نمیدونم الان پس یا نیست بازار و اینا ولی ممکنه خیلی نباشه ولی خیلی. البته مامن کتاب هوزوی که امتحان داشته باشه الا وله هو ترجمه رحمت و ترجمه خدا رنبت که آه مصدر بولی و دیگران تو این زمین خیلی فعال بودن آره ولی باز بالاخره خود تو بنویسید به بهتره بریست آقا چند جهت گفتیم که طبقش ضرورت داره به کنیم سیر اغلا رو. یه جهت درسته؟ اونم که زیر بعضی از بحث اصولیه حالا دو و من جهته روش بنویسید دو انها مسئلتون اصولیتون ایزن خود این سیر اغلا خودش یک مسئله اصولیست خب یه سوال دارم از شما این با قبلیه فرقه؟ این آه. فرقه آه. اون قرینه چه فرقی داره این مبدا اون مبدا تصدیقه یک مسئله اصولی بود این خودش درست این خودش یک مسئله اصولی است حالا اینا یعنی چی مبدا تصدیقه مساله اصول توضیح دادم یعنی اون مقدماتم باید حل شد تا اصول ما یه جاییش پیش بره این چی میگه؟ این میگه خود این مسئله سیری و غلال رو باید حلش کنیم تا چی پیش بره؟ فقه, فقه پیش بره، نه اصول. این مال خود فقه لذا، چون حلش باعث استفاده از او در فقه میشه پس میشه مسئله اصولی دیگه مسئله اصولی مثل این که شما میگفتید آقا زواهر حجت است خب، این یک قاعده اصولی بود تو فقه به حالا خود سیر اوغلا هم باید بحث کنیم حجت است اگر حجت بود اینو تقدیم شما فوقه ها می کنیم برید تو فقه ازش استفاده کنیم چه اصولیتیه نمابت هستی بچه خودش یک مسئله اصولی میشه و من جهت عنها مسئله اصولیه ایزن این ایزن یعنی مثل سایر مسائل اصولی مثل حجیت ظواهر حجیت خبر ثقه و اینم خودش یک مسئله اصولی است حیثا یستدالا به سیرت الاغلاییت کسیرن فلفق تو فرق حالا شما که سه سال لومه خوندید یک سالم هم مقاسب کنید یه مثال بزنید برای جایی که با سیره اغلا تو فق استدلال بکنید حالا قبلا که اونو ببینید دیگه مثال که مثلا تو سیره اقلال ما اینو داریم که بچه به محقلاتش رو اقلال کار میکنن میپذیرن یا نمیپذیرن میپذیرن پزید. می دیگر بچه میده یه دونه نوم میخره یه دفعه اونجا همینه اه این چه کاریه بچه باباش ببین چه آدمه چجوریه تو یه دونه نوم میخره اینجوری نمیگه که بچه میاد پولو میزنه نوموهای باشه رو میده و می بچه میاد یه بستنی می و بست اقلا بیعه تفل رو در محلات خیلی تفل دیگه یک سال دو ساله نه دیگه در حاله میپذیرن خیلی خود تو شریعت ما چه بس ها از همین رو همین به تفل رو شعری بدانیم این شه فقه از سیده اقلا فقه محل شد بیدیم. پس خود سیده اقلا رو باید تو اصول خاله نه به عنوان مبلغ به بهونه یه بحث مستربل بله بچه دو ساله‌ای که سلام کرد بچه ما میده قشیت مواجب اونم به گیشه بر میده نمیتون حرف بزنه دست می‌کنه تو چیه کارت من داره حضرت عجب اسم اون اینه حالا بزار چند وقتیه رمز رو یاد بگیره یه دفعه یه پیامش برداشت از حساب برداشت از حساب بیت خصوصا فیف میرین چرا مثال به معاتات زدن معاتات و تفل و اینا ما چون تو معاملات خدا کار رو دست خودش نگرفته تو معاملات خودتون ای انسان ها همون معاملات باشه من همونها رو شرعی میدانم البته یک قید و بندهای برزن برای این معاملات کرد. اما تو عبادات چی؟ نگفته شما آیونی عباداتی دارید همونا رو من تایید میکنم نه عبادات خودش تأسیز کرده لذا مثال برای سیرای و قلایه بیشتر تو همین چیزایی که بین مردم مثل معاملات و اینها بوده ایشون هم لذا اینجا میگه خصوصاً فی مثل اقوابه معاملات فی مثل اقوابه معاملات نه معاملات بخونید که علبی باشه الذين يكونوا للأقلاء تقنينا فيها روش بنویسید بر خلاف عبادات که برای اوغلا در اون چندان راهی نیست این هم جهت شماره دو اون مثال معامله طفل و اینها هم که حتما نوشتید سوالی داشتید و دیگه یعنی اخبار استوار هم میشه. و هیالته. حالین کجا نه. و هیالته یعنی این سیره همونیه که اصولی در بحث جمع بین ادله هم به اون تمسک پیدا می کنه. آره. سیره، بسیار بس من جهه اینم شماره سه و ايضا من جهه ان دائره الاستدلال بها في الفقه تسعد فلسوره الاخيره جدا بعدين من عبارتو دوباره میخونم این جهت سوم رو با عبارت همراه شید ببینید چقدر میفهمید مطلب را ازش آروم میخونم شمرده میخونم ببینید و ايضا من جهت سوم کلیه اوغلا مهمه و با باید بحث کنیم که تو رسائل و اینا اینا بحث نشده بود اینه و ايضا من جهت ان دائره استدلال به این سیره به به سیره فقهی اتساعت دایره استدلال به سیره در فقه اتساع پیدا کرده اگر 600 700 سال پیشتر هلله مثلا مدرسه هلله قبلش در مدرسه بغداد بعدش در مدرسه جبل عامر ده تا مسئله فقهی رو با سیره اثبات میکردیم الان تبدیل شده به دیویست تا مسئله فقهی خیلی اتصاب پیدا کرده متوجه شدیم یعنی این سیره اقلا و اینها دیگه کار کردش برای یک فقیه امروزی خیلی بیشتر از کار کردش برای فقیه 500 سال پیشه چرا؟ الان میگه سرش رو میگه اتصاد فی الاسور جدا یعنی مهمه بعد ما حالا ببینید چرا فقه ما 700 سال پیش ده تا مرس مثال رو مثلا با سیره اثبات میکرد اگر باشه البته اما الان 200 علتش اینه میتونید یه فکر کنید بگید چرا مساله مصنح مساله برسی آره ولی ولی نکته این جهتم سومینه همون مسائل نه مسائل مستثصه. اون چه گفتی سال مست ولی جالبش اینه همون مسائل 500 سال پیش رو بیاری نه مستثصات رو تو همون مسائل مثلا 100 صفحه از کتاب فقهی محقق رو مثلا علامه رو بیار 100 همون 100 صفحه تو کتاب آقای خویرم بیار می‌بینید می که اینجا کسر البته این سندری من ثابت کلاس داشتن این آشناس برای من یه <تصفيق> زمانی یه حال میکردیم ما <تصفيق> دو سه بنام نباسی منو پاره کرده بودیم پیچه ای از اینجا داشت پیچه رو برداشتن باز چسب دادن که پاره نشد خب همون مسئله های فقهی اون زمان الان بیشتر به وسیله سیره اثبات شده میتونم بگی چطور شد چی شده؟ همون مثالش از تور الان سیره بیشتر به کار لفته. باشه، اون 20 آره. تو همون فرآیند چی شده اینجا؟ چه سیره ی سال پیش میوم خیلی کار کرد نداره، الان خیلی کارگر داره. تو همون مثال. چی؟ <تص> معاشرت ها. معاشرت ها زهنتون به یه جایی رفته درسته چه ولی یه جایی رو الان میخواد تذکر بده که اون تو زهنتون نیست اون اینه میگه ببینید قبلن ها دلیل ما یه چیزایی بوده که اون دلیل ها بعدن توسط پیشرفت علم اصول زعف پیدا که از زعفش آشکار شده حالا چه زرفش آشکار شده چیکار کنیم؟ ور کنیم اون مسائل رو؟ بیمونه دلیل جایگزین داریم دلیل جایگزینش است متوجه شدید ببینید مثلا 700 سال پیش علامه یا محقق یه مسئله رو اثبات کرده با اجمال منبور الان دیگه اجمال منبور رو مطبول نداریم چه خسار رو بیدید؟ پارسان چقدر پس کرد؟ نه پسی رفتید؟ باید شرط ر حالا الان چه کنیم؟ میگه هجبان مهورو بذار کنار. حالا فتوا از دست میره آقا جمعا. میگه یه سیره داریم. نه ترس سیره داریم. با سیره همون مسئله اثبات میشه. لذا قد ها کمتر با سیره کار کردن. مثلا با خبر زعیف اثبات کردن چیزی رو. الان دیگه ما با سیره اثبات به خبر زعیف نمیکنیم. حالا اینیه کنیم. حالا این یه و ایزا من جهت اند دائرت الاستدلال به ها این همزه استدلال هم همزه دیگه دائرت الاستدلال به ها فی الفقه تسط جدا بعد ما جدن بعدما از زحف و نقاش شد. بعد از اینکه ضعف و اشکال نقاش در کان چکان اول و علیها سابقا آشکار شد بابا چان اجماع منقول رو شما هیچ زیر بنایه استدلالات قرار دادی؟ اونا ضعیف بود آقای فقیه 700 سال پیش اونو میزنیم کنار خبر ضعیف امنام اینا رو بهش عمل کردید میزنیم کنار پس چکار می‌کنیم. جایبازی میکنیم کانه یعول و علیها ثابتن، اون ادله که قبلا بهش اعتماد میشه، تکیه می‌شد، ل اثبات المسلمات و المرتکزات الفقهیته. برای اثبات یه سری مسائل که حالا شما ممکنه بگید که آقا جان، اون دلیل قدیمی اجماع منبور بود؟ خب وقتی ضعفش آشکار شد، بزار چنار دیگه. همون اجماع منقول رو, رو بزار کنار، همون مسئله فقهی رو و رو بزار کنار. بگیم نه اون بعضی از اون مسائل هست، اونها مسلمات یعنی میدونیم اون ثابته فقط دلیلش اون نیست پس دلیلش چی میتونه باشه؟ بگیم بابا اونا متوجه نبودن دلیلش زیده است مثل همین الله خود همین مثل اصولی مثال همین بحث حجیت خبر واحد من میدونم یقین دارم خبر واحد حجته برادن خبر واحد حجته قدیم متاق قدیمان میگفتن آیه نبه من ارلا میبینم آیه نبه بابا جان نمیشه با آیه نبه استدار کرد اشکال داره ضعف و نقاش توش آشکار شد این خیلی خوب. پس آیه نبر که نمیشه بهش استدلال کرد برای خبر واحد چه کنیم خبر واحدو کلا بذاریم کنار میگه نه سیره سینه و غلط نشه اینه حالا این مسئله اصولی ایشون تو فقه هم همینو میخواد بگه لسوات المسلماته مثل همون خبر واحد اینها ول مرتکزات الفقیه حالا روی این فقیه من این قدم تو زهنم نه الان اضافه کنم بروش بنیسید ور اصولیت یعنی فقط فکری نیست الان مثال خبر واحد اصولی بود خیلی هم مثال کاملا منطبق واحد مطلب چینا هم گفتن ور اصولیت خی... مثل خبر واحد بله کماج امور نه چرا سیره به تو باشه. ما دیگه خب قدیم ما شاید به ذهنشون که اینجا یه سیره ای هست. آلا من... ولی الان ما میدونیم سیره هست. که خب، هیچ دلیل دیگه ای نداریم دلیل. مثلا تعبودیه اگر اونجا اجمه های منبول منحسرا دلیل ماست اونم نقاش توش باشه اینون این میست اینون میست اینون نیست از این جهت که این اصلاً این اصلا یعنی دست البته که, که سیره منطق در واقع راه داشته از اول هم راه داشته هارون اتفاقی نشه داشته نه که به واسطه اینکه علم اصول پیشرفت کرده و بالغ شده از همان اول هم تو قابل اثبات بوده هارون اتفاقی داشته اینا همینا بود آره یعنی قدیمیا به ذهنشون نرسید که این خبر واحد رو با سیر اثبات کنن اومدن با این نبر اثبات کردن بعدن با این نبر رو دیدیم مفهوم شرط تو مفهوم وصف اونجا کارایی نداره مثلا خب میگیم به با سیره استعداده کنید اونا به زینشون نرسیده بود ما رسید متاخرین رسیده خوبه نه مشکل نداره خیلی خوب من قبیل من منگوله و شهرت او عمل الاسحاب به خبر زعی... به ضعیفن. زعیفن قدیما به یه خبری عمل کردم که ضعیف بوده الان ما نمیتونی به اون عمل کنیم چطور عمل کنیم خب حالا چه اینو این رو دلیل رو میزنیم که با یه دلیل جدیدی به اسم سیره اقلال ازش البته این به من این نیست که هر جا کم آوردیم یه اهرامی داشتیم قبولا اهرام رو بکشیم پایین یه دقیقی سیره بیادیم نه به شرطه که سیره اونجا باشه شرایط اوجیتش باشه نه لا این یعنی ابراهیم زال انداز دادم فکر کنه که از را کم آوردی بگو سیره داریم مثل بس آيا شاف زاده ها ته اجماع معقول شیخ حسانی میگفت میگفت بعضی از علما هر جا دلیل کم میاره میگیم تو اجماع داریم درحال که اصلا ندیدن هیچ چی نبوده اونجا اصلا بعض ابن ازسیاتونه یه فتوایی رو گفته بود اجماع داریم که اصلا هیچکی کی قائل بهش نیست این اون نیست باید سیره ی باشه تا به تمسک بدو خب ف قد دوقد اول زب سیرت اند مثل ها زل عدل لات فی کسیر من ال مسائل لاتی لا جتمک نو فی هال فقیه ه من ال خروج فقیه نمیتونه خاردش از این فتва ان فتاه قدما من ال اول آراء الفقیه مشهوره فتاهای قدمای یه چیزی بوده یا آراء الفقیه مشهور یه چیزی بوده نمیتونیم از ازشون خاردشیم چون فقیه جدید پیش میاد مثلا ولی دلیلشون هم دراست نیست. چیزی ببین اگ سیره هست به سیره تمسک پیدا کن. اینم جهت سوم برای اینکه ما باید از این بحث کنیم از سیره اوقات. از افوا الى جمع ازاله کرد. اینم چهارمین. انه قد سحت سبع بعد اصل معصومین علیهم السلام الى زماننا كثير من از سیرل اقلایه. اینم یه بحث مهمیه. اگر ان شاء الله فقیه بشید چه قرار ما جلسه قبلی شد که همه اون باید فقیح بشیمشن این خیلی مهمه میگه ما الان یه سری سیره هایی داریم الان چه سیره های مستحتس هست مثلا الان تو جامعه ما همه ماشینا ها سیره شون چیه؟ راننده ها چکار میکنن؟ ماشینشون رو بیمه شخص سالس میکنن درسته؟ همه این کار رو میکنن این سیره شده قبلا نبود که زمانه قیمه نبود یا پول و بانک و نمرو میخوام بیمه و همسایه این سیره های جدید که شده باید ببینیم این سیره ها آیا مثل سیره اخذ زواهر که زمان اهمم بوده اینا میتونن باشن یا نه اینو باید بس کنیم اینا مهمه کلی سیره الان داریم باید بحث کنیم اگر به درد خوردنی بودند ازشون استفاده کنیم دیگه خلاصه پس اینو باید بحث کنیم ببینید قدس توح دسر بعد ها. اصر المعصومین علیه مسلم الان زمان ما کسیری از سیره های اغلاییه و, و تازه بردازین هم هست اصلا سیره در جامعه هی hey, به وجود می آ سیره های جدید بیس سال بعد سیره های جدیدی هست الان سیره اینو که همه گوشی همراه دارن خب، سی سال بیش اصلا چیسی بینه می گوشی همراه چی فلابود دمه نربه ببینید لابود یعنی اون ضرورت دارن میداز. فلا آیا شکل بزرده اون در یه زره هول بده این حواظون الان تمام میشه فلا بده من البحث ان ان هازه سیر المستحدثته مثلا پانچهار امینا پور حل وزان و ها وزان و سیر المعاصرت فرحوجیته آیا اینها مثل هم سیره های قدیمی معاصرت این بگذرم تعبیر یزادت دقت نشو این معاصرت شروعش می معاصره با ائمه معاصرت آدم فکر کنه یعنی الان معاصره در حالی که این معاصر یعنی معاصره با ائمه باشه که حجت باشه فکر کنم اینجوری حالا عبارت یه گیری اینجا من احساس کردن آیا این های جدید با اون سیره‌های چه زمان ائمه بود و حجتا با اونها یکسان است وزانش یکی در حجیت اینا مجته و سایر و صائر ما یترتب علیها صائر عطف بر اون ان هستش فلا بعد منهن بس ان هاذه و سایر چیزهایی که بر اون مترتب میشه چطور این سیره ها شرایطش چیه چه جوری هست و اینها اینا رو بس بکنیم اولا یا اینکه نه این, این سیره ها به درد نمیخوره سیره های جدید فایده نداره ثم خیلی تمام شد چهار تا وج گفتیم برای این ضرورت توی یه دقیقه ثم رو هم بگیم بشه آقا جان سیره به این مهمی چهار تا جهت گفتیم نه اون یه جهت اولش کافی بود فوقها اصولی ها و فوقها درمدهش بس نه چند بس باید بس کنیم سمه اینال اصحابا مانه هم استدلو به سیرت فی چسیرن من الموارده لیکن نه هم لم یونم قهوها علا حد تنقیهم لسائر خبر که حجیت خبر الواهید حجیت خبر الواهید پدرشا درموردن اینقدر ولی در مورد سیر اغلایی بحث نکردن تنقیش نکردن در حد تنقیه اونیه چی بحث ها چه حجیت خبر الواحد این یه بحث خیلی بحثش کردن اما این رو بگن حجیت خبر الواحد خب یه بحثی بوده مورد نیاز سنیا بوده رضا از همون صدر اسلام این پس از همون تحریبا قرن دوم ها این بس شده لذا حقشه که این هم بس شده بود، ول جمع بین الحکم ظاهریه ول واقعیه این یکی از بست های اصولی هست بهش نمیپرده از عمدان این رو بردن انشاءالا تو کفایی هم میخورید جمع بین حکم ظاهری و واقعی یه بست اصولیست خیلی بستش کردن ولی این وغلا رو مثلا اون بحث نکردن و غیر زال کرد ما اکثرت موارد احتیاج ال الاستدلال بها فی مباحث اصولیته و الفروع فقهیته لاس یما جملتن من الفروع المستحدثه التي تصدر فقه المعاصر العلاجها مثلا بیمه الان مستحدث است باید ببینیم این سیره به در می یا نه پس اینا رو چه هست چرا بحثش نکردن فقها فقه بحثش نکردن متسن سیره رو حتى شده نچدن و هاذا هو و دافع لنا ان بحث احسن مستقلا این همون انگیزه ای برای ماست همون انگیزه بود برای ما که بحث کنیم به عنوان یه بحث مستقلی ان حجیه سیرت ما تمرکز البته میگه تمرکز ما هم بیشتر رو سیرهای مستحدثه خواهد بود یعنی به درد فقه معاصر بیشتر بخوره ثم ها هنا عدة عناوین و صلاحات قد يختل طل مراد منها على بعض اذهان یه سری اصطلاعات رو هست که چون تو بعضی از زین ها قاطی میشه این ها مثلا بنای وقلا با سیره وقلا چه فردانه تجدرال اشارت رو علم من ها و بیان و وجوه الافتراض بینها ها اصطلاعات رو وارد میشیم فرقاشون هم با هم دیگه میگیم اشتالله حل بشه صلابت پفرستیم <س viris> محفظ و محیط بستیم صلابت اگر تونستید تو فخ جستجو کنید مثلا در مسائل فقهی سیره اوغلاوی دوستا تزو موردهایی که تو فکر استفاده کرده همینجوری جستجو بزنید میاد ببینید کجا ها فقط این نگاه بندازید اون کجا به سیره اوغلاوی استفاده کرده خوبه تو اصول هم میتونید جستجو کنید که تو اصول به چی مراجعه کرد، به در مورد چه مسائلی به سیره مراجعه کردن خوب اگر این کار رو بتونید انجام بدید موفق